ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إنك حميد مجيد برادرای محترم درس امروز ما شما درباره بعضی از دوستامی مفهوم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله چی کردن پرسیدن و بعضی کسا گفتن که اگر در ورزیم یک کمک بر ما یک دست گرفته شدن تا که ما مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله را بفامیم و علت شیعه است که بسیاری کسا مثلا در این شرایط مادی میبینیم بعضی کسا اصلا به مخلوق سجده میکنن نام اسلام این رهبر فلان فرقه است فلان طایفه است برازو سجده می کنن می رن پیش قبر سجده می کنن می رن پیش بود سجده می کنن می رن پیش اگه انسان زنده رکوع می کنن سجده می کنن اینجا اصل مشکل در چی است؟ اصل مشکل در ای است که ای و ما، ای کسای کسایی که کارا را میکنن، اینا مانای لا اله الا الله محمد رسول الله را نفهمیدن. ما باید اول مانای این کلمه را بفهمیم. شما ببینین فکر کنین حضرت محمد صلی الله علیه و زنده هست. آیا محمد صلی الله علیه و سلام در زندگی خود سوال بکن احادیث است قرآن است و احادیث است و انسان باید قرآن بخونه و انسان باید حدیث بخونه تا که دین را بفهمه اگر اعمال در این مجلس ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلام حضور می داشت اگر میگم مطمئن ندارم که است اگر وجود حضور می داشت یک نفر میره برش میگه که پیغمبر خدا ما میخوایم بر تو تعظیم بکنم بر تو سجده بکنم آیا پیغمبر خدا اینو قبول میکرد در زندگیش مردم صحابه اومدن گفتن ای پیغمبر خدا بر ما اجازه می تیم و ما بر سجده کنیم پیغم بس سلام برش گفت که نه اگر سجده جایز می بود ما چی می‌کردم؟ اگر سجده جایز می بود من برای خانم ها می که شما بر شبهرهایتان سجده بکنین ولی ما بر خانم ها امیره نمی گم. یعنی به خاطر که خانم ها بر شوهرای خود احترام بکنن ما امیره نمی‌گم. معنای حدیث شریف است که یعنی سجده کردن به غیر از ذات الله جل جلاله به کس دیگه جایز نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلام خودش کس را اجازه نداده در زندگیش که سر خود تعظیم بکنن. پیغمبر سهمهگو میگه شما بگین سبحان ربی العظیم. تعظیم فقط به ذات الله جل جلاله بکنید. مسلمان ها وقتی که در حبشه رفتن، در حبشه دیدند که مردم به او پاچه هبشه چی میکردند تعظیم میکردند مثل که ما شما در سبحان ربی العظیم استاد میشیم وقتی که پاچه ها داخل شد کلگیری هفتند به تعظیم اصحابی که در حالت بسیار سخت قرار داشتند در دا حالت قرار داشتند که از وطنشان مردم کشیده بودشانه و در اینجا هم آمده بدن که یار جای نتی و پاچه هم مسیحی هست یا آمده بدن که اینجا پناه برن که چند وقت قبلا میکوشیشانه پیش ازی پاچهایی که اگرچه خودش مسلمان نیست مسیحی است اهل کتاب است لکن مردم مسلمانه پناه میداد رفتن پیش از او و آل فعلا در قاس رازو قرار دارن آلتشان بسیار خراب است. و قرائش خودم روان میکن از پشترشان که اینا را اونجا هم نمانه کلگی تعظیم کردن بری پاچه رواج است لیکن مسلمان پشت رواج نمیگرده است، رواج یک چیز است و دین و عقیده چیز دیگه است کسی که مطابق رواج خود دینه پیش میبره او متدعی نیست او مسلمان نیست اوره خدا دینش قبول نمیکنه عینه این ما وقتی که اومدن در مقابل از دیدن که کُلگیست پادشاه دید که لگی به تعظیم رفتن مثل که ما و شما سبحان رو العظیم میگیم مسلمانا سے تعظیم نکرد استاد بود پاچه حبشه پر شان شان کرد شما چرا تعظیم نکردین گفت بر ما رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه داده و یاد داده و قرآن بر ما نازل شده قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بغیر ذات الله جل جلولوه و کسی دیگه سرت پایین نکو حتی با پیغمبر سجده نکو بر پیغمبر رکو نکو لفظه ایس حق است دینی تان حق است میکوشی ما از شار ما رو میکشی دفنی دین حق است سجدا و رکو به ذات الله جل جلوه است اینمی سجده کردن به الله اینمی رکو کردن به الله اینمی دست دوا بالا کردن فقط به الله جل جلوه اینمی عظمت الله را قلب جای دادن اینمی مانای کلمه لا اله الا الله است اگر ما شما قرآن عزیب و درست مطالعه کنیم و بخوانیم. ده کل قرآن از مشان بر ما میگه که ولا من خلق السماوات والارض اگر از مشرکین پرسان میشد از ابو جهل از ابولهب از امیه ابن خلف از بزرگای مشرکین از کل مشرک پرسان میشد ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض قرآن بر ما میگه او برادر بیا این ما دین خدا عقیده خدا کلمه خدا از قرآن یاد بگیریم از ورای خدا یک نفر میخیزه به نیابت از دین گپ میزنه یک روز قرآن درست خونده نمیتونه ال تو چطور از قرآن گپ میزنی درست است مثلا من استاد پانتون هستم لكن ما حق ندارم که بخیزم بگم که من استاد انجینری هم هستم انجینری درس میتونم من تخصصم می ما ولت هم درس می بخیزیم یک دفتر باز کنم میگم که اینا بیاین بادازی به شما ما برطان پیشکاری می کنم ما میک پیشکاری کردن هم میتونم انال هر کس هست. هست. ال است تخصصش است حالا ما چرا در رشته بود تخصص خودی خودی که که من شیخ بود پدرم خوب بود من بود لکن از پدر خود علم خود انتقال نمی کنه تو خوبه کتاب بخانی. قرآن بخوانی. قرآن میگه ولا انسال تهم من خلق السماوات والارض والا این و اگر سألت هم اگر پرسان کنی ای محمد صلی اللہ علیه از مشرکین هم بر مشرکین راجز یعنی گفت اگر از مشرکین پرسان کنی من خلق از سماواتی والارد که آسمان و زمین که خلق کردن لگه قولون الله میگن الله خلق کردن امی آیت روزی اولی که من خودم خانده من ایران بودم اوی مشرکین میگفتن که آسمان و زمین خدا خلق کردن بله قرآن بله میگفتن حیران مانده خیلی وقتی که میگفتن که خدا را مشناختن می و میگفتن زمین و آسمان خدا خلق کرده، ایره ما مییم ما چرا مسلمان هستیم خیلی با مشرک بدن باز آمده ما آیت دیگه را خاندهیم که تواف میکردن گفت تواف هم میکردن نماز میخوانن، ولی نماز هم میخاندن پرسانشان بکردی باقیده که زیمه باقیده ابراهیم علیه سلام هستم عقیده ابراهیم علیه السلام نماز میخورد تواف میکنه، زمین آسمان هم میگه خلا رفقی براتان میده الله خی بین ما و بین عظیم مشکل چی فرق بود خی چرا خیستند در مقابل پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند اونا در مقابل لا اله الا الله خیستند خیلی یک نفر که بگه که آسمان خدا پیدا کرد زمین خدا پیدا کرد رسق خدا میده تواف میکنه نماز میخونه خیلی در مقابل لا اله الا الله چی مشکل داره؟ گفت مشکلشان در مقابل لا اله الا الله ای بود که اونها میگفتن که نه الله وجود داره الله وجود داره ما عبادت به خداوند عبادت میکنیم لکن اونا میگفتن که در پالوی خدا دیگه معبودای خرد و کوچک هم وجود داره میگفتن ما نماز میخانیم بخدا ما سجرمه کنیم بر خدا ما میگیم که خدا زمین و آسمان خلق کرده هم میگفتن الله میگفت ما ایمان داریم ما ایمان مشکل نداریم اما مشکل مشکلتان خیده چیز گفت ما نظر خدا میبریم پیش هوبل ناظر میبریم پیش هوبل چرا ناظر پیش هوبل میبریم گف فی صبی هوبل الاتی مناتی 360 بود که بودن یا کلش دوستای خدا بودن شخصیت های بزرگوار بودن اولیا الله بودن پیغمبرا بودن حتی در تاریخ امیر است صاحب روز من دمی کتاب الرحيق المختوم آه، آه، آه، که امو چې روز کې بسیار اعطای ر کانفرنس شورای اسلامي راغورته کتاب بسیار قوی و معتبر و دقیق کس و جایزه عمومی را گرفته گفت که حتی روزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در د مکی مکرمه داخل شد بوته که چې چوب خود پایان اندوخ گفت دو مجسمه بود یکی مجسمه ابراهیم علیه السلام و یکی مجسمه اسماعیل علیه در دا داخل کعبه مونده بودند ما دین ابراهیم هستم ما ایناث تصویر ابراهیم علیه السلام اجور کردیم ما بدین اسماعیل هستم این نماز اسماعیل علیه السلام هست. ما کافر نیستیم ما بدین نیستیم ما خوتو نیستیم چی میگن؟ خای ای بوتاش است این دوستای خدا هست این دوستای خداوند شفاعت ما را میکنه پیش خدا پیش از این دوستای خدا میگیم که این دوستای خدا ما را و خدا نزدیک بسازه لیقربونا الله چرا خدا دور است خداوند گفت فاذا سالك عبادي عني فاني قريب خداوند بر گفت که الله الصمد او مردم الله به است از چی بی نیاز است؟ از چیزهایی که مخلوقات به اون من هستن. مخلوقات با چی نیاز دارن؟ اگر تو پیش یک رئیس جمهور میری، پیش یک پادشاه میری، تو مجبور هستی که چون رئیس جمهور در قصر، چهار طرفش پرهدار استرا، است. مجبور است پیش سکرترش بری، مجبور است پیش بادیگارش بری، مجبور است پیش رئیس دفترش بری. از این خاطر تو مجبور است از طریق واسطه‌ها خدا برای جمهور برسانی. خداوند گفت که ما الله سمد است خداوند بینیاز است من ضرورت به این سکرتر ضرورت به این ماون ضرورت به ای بادیگار ندارم خداوند ذات زلجلال است فا اینی قریب وقتی که بنده های من دباری من بکنم من خودم به بنده خود نزدیک هستم رری جمور گپ تو رو همش نوازی خاطر مجبور است از تاریخ بادیگارد رو راپ بهشش میری وقتی که میگه خداوند عامل غیبی و رهاده هست خداوند عالم غب است و شهادده هم قای بعد وقتی وقتیگی چرا چیخ بزنه ببین الله الله یکتیداد از خواب فیقم بر در اگر را جهات کرد مح کا من صق کرد الله وگبر الله اکبر چیر زدم میرفن ب قما به گفت که ااربه ها بالاا ان سر نفس هایتان رحم بکن شما ذااتره که کرباشه یاده دور باشم عیاز بله عبادت نمیکنین خداوند مطال که دمی قلبت گپ بزنه عالم غیب است میفهمد فامد دمی قلبت هم که بگی که لا اله الا الله در دلتان بگرد آیستا هم بگی که سبحان الله سبحان الله خداوند می فامد ایناله اینجا ایبوتار ایش از شخصتار ما عبادت میکنیم اینا ما را به خدا نزدیک می سازه. خداوند گفت که من خودم نزدیک هستم آلو من نزدیک اسم بنده خانه پرپلو آلو من خودم نزدیک بر تو اذا سالک عبادی عنی فا اینی قریب اجیب و دعوت الدعی اذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي. <المان> وقتی که سؤال کرد بنده های ما در مورد ما فاني قريب قریب ما <المان> به بنده خود چی استم؟ نزدیک است در سوره قاف آیت شریف دیگه میهه که من حبل الورید خداوند برای انسان از شعره گردن این کردن گردن چقدر امرای تو نزدیک است خب خداوند برای نزدیک است گفت ها میفهمه مشکلت ها درک میکنه دقل قلب چیز را بگردن خداوند ذات کریم هست چرا خداوند ذات کریم است میگه فرق بین سخی و بین کریم است که سخی بود ازو که از پیشش بتل میبرت میتا لكن کریم که اش نتل میبرت میتا تو نگفتی خدایا دو چشم بده تو توفل بودی خدا خداوند دو چشم داشت چون ضرورت داشتی نگفتی که بر من قلب خدا خدایا تو دیگه مش شک جون میشری بود دعا میگیدی باز قلب میداد گفت خداوند ذات کریم است پیش ازی که تو دعا بکنی خداوند ضرورت هایت را برات داده کریم پیش ازی که تو بخوای برات میداد خب اذا سألک عبادي عني فا قريب قریب اجیب و دعوت دا اذا دعان ما دعای دعا کننده اجابت میکنم فلیستجیب و لیو پس اومردم خیلی وقت شما دعا میکنین پس اجابت من بکنین به من ایمان برین خدا میگه پس به من ایمان بینید تو خب به من ایمان نداری چرا به من ایمان نداری؟ من چرا وقتی که بفاهمم کارم پیشم یا خیل بند است و میفهمم که یادم بسیار مهربان است چرا ما بروم قاری با واسطه کنم قاری صاحب تو بیم خیلی قربانه که تو شمم قربانی لونگی که داماتی تو بگی برای من چیکن؟ پش میاخیل صاحب برو و بگو چیز کو برای من تو واسطه شو میاخیل صاحب برای من مگه چرا یک قاری را وردی؟ چرا یک قاری را وردی؟ میمیم سایی بخلای ساد من به تو مهربان نبودم؟ نمیتونیسی نمیتونیزی مستقیمند پیش ما آیا از ما که در این مهربانتر بود خدای عزوجل در روز قیامت از پیش ما موتو پرسان میکنن من گفتم که من رحمان هستم من رحیم هستم من غفار هستم من ستار هستم چرا پیش ما وقتی که من رحمان و رحیم بودم چرا پیش کسی دیگه رفتی چرا من نزدیک با... گفتم از بسوارگی گردن که ولی تو نزدیکتر هستم عقیده که طفل بر مادر خود داره همین عقیده رو اگر یک مسلمان به خدا داشته باشه موحد است یک طفل مادرش ده دفعه کت سیلی میزنه باز پس داغوش دا مادر خود میره کی میره پیش خارم امصا که به خالجان تو بیا که مادر مرا میکنه کدام طفل رفته پیش هر قدر مادرش میزنه پس خود در مادر میپرده مسلمان حقیقی نمیست که هر قدر خداوند از امتحان میکنه پس به بارگاه خداوند متعال جل جلو حروجو بکنه این مشکل چی بود از مشرکین؟ مشکل مشرکینی بود که ما،, ما بر خداوند فلانی را شافی میبریم، تصویر از را جور کردیم مجسمش را جور کردیم مشرکین بعضشان از بطهار چیز کرده بود؟ بعضی ها میرفتن در قبر میگفتن ما قبرش از اینم رو در قبرش سجده میکردن چرا سجده میگه و خاطر از که شخصیت بزرگوار است بازگفای مر ای به خداوند متعال برستانه ما شما وقتی که قرآن رو بخونیم و حدیث رو بخونیم با دوزون میفهمیم که لا اله الا الله یعنی چی مانه لا اله الا الله ببینین لا اله یک عبارت است الا الله عبارت دیگه است لا اله مانای چی که اینه درست کسی کلمه را میخونه این قسم بخوام که لا اله هم لا نیست دمی نیست کی داخل میشه نیست همین تمام مخلوقات نفیه کن نیست هیچ پیغمبر نیست هیچ ملائکه نیست هیچ دوست خدا نیست هیچ دشمن خدا نیست هیچ انسان نیست هیچ حیوان نیست هیچ جن نیست هیچ چیزه لا نیست اله حقیق معبود که برازو عبادت بکنی برازو سجده بکنی نیست کلمه میگه که خیلی وقتی کلمه میخوریم چی مانا کلمه مکه؟ کل از یارا را نفیه میکنیم نیست هیچ کسی اله چی را میگن اله معبود میگن یعنی کسی که ما او را عبادت بکنیم کل شباید نفیه بکنیم کلش نفیه شما هیچ کسی قابل عبادت نیست هیچ کسی شایسته عبادت نیست هیچ کسی شایسته سجدن نیست، هیچ کسی شایسته رکون نیست هیچ کسی شایسته دعا کردن نیست که برای دست دوارو با حاله کنیم این فلانی جان برمه ایک کار بکن کل از یادو نفیه بکن ایلالالا الله الا را علماء میگن شما علماء متخصص نحوی را پرسان بگوین میگه ایلا عداد استثناست استثنا چیزایی دیگر کلش اوزو میکنی یک ذات استثنا کرده خداوند متعال جل جل حو. و میگن عداد حسرین یعنی عداد حسر است که وقتی که در چیز آمد فقط اونمو شامل میشن خود خدایوند متعال پیغمبر تمام روز دی بازار میرفت این طرف میرفت ده از اون نفر میرفت دا داخل مسجد ده دا خانی خود هر جا کل مرد من میگفت اولین 13 سال عزت محمد صلی الله علیه و سلم منطقه منطقه میگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا او مردم بگو که لا اله الا الله که فلاح خای ایمشریکین که خدا را مشنختن عبادت میکردن لا اله الا الله نمیگفتن گفت نه جنگ یزنا به زدت لا اله الا الله بود جنگ یزنا به زدت چی بود لا اله الا چرا زدت لا اله الا الله جنگ کردن خدا را مشنختن گفت به خاطر از, از یک سیک فرمول فرمول رو یاد بگیرین عقیده رو یاد میگیرین یاد نگیریتی عقیدت درست نشن در فارسی مثلا ما تو میگیم دو جمله دو جمله در فارسی میگیم در فارسی میگیم که ایمل در مسجد است ایمل در مسجد است ایمل در مسجد است این رو که برای ما تشریح کرده میتونه که چی فرق از بین دو جمله فارسی اند؟ داریم من بر شما دو جمله میگم خب گوش بگیرید از جلو اعمال در مسجد است یک جمله جمله دومی که هیچ کس به غیر از اعمال در مسجد نیست کی میتونه بر ما تشکل بده جمله اعمال در مسجد اساساً از در مسجد اساساً این یعنی تو ما نه میتوت کسیدگان مطمئن است و کسیدگان خاص اعمالی کار داره اون مفهومه گرفته که اون اعمال است تایید نکرده که دیگر کسی همست شاید باشم اما بار ضفه دوم که گفته هیچ کس نیست تنها ایمل است یعنی ایمانا که هیچ کس نیست تنه فقط ایمل است خب استاد اگر مثلا تو سر... سر... سرمعلم مکتب استینه من بارت بایم که در صنف هیچ کس در مکتب در مکتب ایمل در صنف شما برای تا گزارش میتونم سرمعلم شما ایمل در صنف است و جمله دیگه بعد میگم که هیچ کس در صنف بغر از اعمال نیست چی می از دو جمله؟ جمله اولی رو می که این اعمال حاضر است دیگه شاید حاضر بودشن اما زمانی که میگیم بجز از اعمال کس دیگه نیست معنای گفی است که تنها ایمال آمده دیگه رو نامده این است اینی گفت میگم این جمله را میگم که ایمال موجودن. ایمال موجود عربها میفهم اامل موجود است موجود است اامل موجود فی الفصل در عربی ایمال در صنف موجود است ای جمله با ای جمله دیگه چی فرق داشت وقتی می که لا احد الا ایمال هیچ کس نیست مگر امل مشکین میگفتن که الله موجود هست مشکین چی میگفتن؟ الله موجود است. یعنی الله وجود داره در پالوی الله کسای دیگه هم هستن سی بود دوستای خدا هستن سکرترای خدا هستن دوستای خدا هستن ماره و ما نعبده ملالوی قربونه الالله الزلفا ما اینا رو عبادت نمی‌کنیم به خاطر عزیگی ما میرم پیش از بت‌ها چون ما یا ما رو به خدا چی میکنن ما رو نزدیک میکنن ما روی سیاستیم ما شرمنده استیم ما بیچاره استیم خدا اعمال ما رو قبول نمی‌کنه از این خاطر ما میریم پیش از باز این بت‌ها را وقتی که میگیم باز بت‌ها اعمال ما رو میگیره برای خدا میبره اگر خودشان تانستن حل کنن مشکل ما رو خودشان حل می‌کنن اگه خود دریزه مشکل است اگه باز کلان بود با خداوند اینی ما رو به از این طریق خداوند نزدیک میشه. پیغمبر سلامت گفت که بگوین که عذرت محمد وقتی که آمد خب این کسایی که اینجا بودن کلچنان بایفتن خدا موجود است خدا موجود است خدا موجود است عذرت محمد سم مجرد که آمد او است زبان خوب میفهمن گفت که هیچ کس قابل عبادت نیست بغیر از الله داروندوه شورای عالی استراری جلسه استراری گرفتن گفت میفهمن که چی میگه محمد صلی الله علیه وسلم؟ گفتن چی میگه؟ گفت این میگه که 360 بطا نفیه کنین نو هبل نو لات نیست اِلّا الله میگم اگه بغرز الله ما 360 دونه بت ما رفتین صاحب فلانی بت اسفلانی فلانی انتقام گرفتیم از یاقوت بود دست نداش بازوس شام از طلا جور کردین آل صبی بت یاقوتی بود دست طلایی راه ما اله بتیم و این 360 بت ها رو اله و این دوستای خدا را که باز ما رو قریب میگونه و ما پیش از این زیر پاش گوسفند دلال میکنم باز خونش داده بود چیدکش میچسپاند نمو زیر پایا بود و سنگ میزدن پیش فلانی زیر پاش غلال میکردم مالیار کلشان ها ایلا بتیم و پدرها و پدرکلانهای ما کلشان کار رو میکردم آلما خیزین کل تاریخ آبایی خود فراموش کنیم تاریخ اجداد خدا فراموش کنیم هیچ کس ملا نبود هیچ کس فامیده نبود یک تو حضرت محمد صلی اللہ علامه سرماسر تو خدای قدر خیلی سنسر از یه جنگ شروع کردم بزیده کی بزیده باختگی حالت است امروز عین گبه بعضی مسلمان ها میزنن عین گبه کی میزنن بعضی مسلمان ها میزنن یا کاسه همت پشما علی کل گپات خوشم میه و لا گف زنتم خوشم میه و سی دی های تام گرفتیم فلانی رو هم گرفتیم فلانی گرفتیم اول سیدی دی ام گرفته یک سر من میگزارد اگ ها فکر میکنن از این سی دی یک یک درصد در من مفته که هر که سی دی خریده من میرا کاش که تو جوار خکاسنا شود که بر ما قیسادی در مقابل سیری بود مقابل درس بده یک بس من را که اس چند شما صاحب چند ماهش میگیرین چه کی شما را تنویل میکنه من تو مرا تاول هم تو یک نر پیدا نشد که تنویل کنه حالا که پیدا شود بیای پیش ریک بگیم بته من اول گفتم تو تنویل کن دمت یک 5 دلار در مقابل درس خوبه هم خرما هم ثواب مختار گفتم تو جوار ان ایدی که بر ما تنویل منویل کنه تخریب نکن از تنویلش تخریب نگم تخریب خب صاحب کلو گفت پاییت خوشیم چرا کلو گفت پاییم خوشیم به امروز نقیبم کدام تا دیگه خوش شام نارم کمرش هم ترف خب خب یک بقله امروز فلم برداری میکرم خب کلو گفت پاییت خوشیم آمد چی گفت پا آمد گفت مثلا ما میرم اک بشید دوست خدا در قبر یکی از دوستای خدا میریم اینچه سجده عبادت نمی کنیم. سجده احترام میکنیم کنیم سجده می کنیم میکنیم مثلا یک کار می کنیم یاد یک چون نقص دارم یک چون نقص دارم من برادر عزیز فکر کنیم من همیال همیجه باشم یعنیم هم نفر نیم من ما عمل ده پیش رو هستم اگه تو بیای برای من رکوع کنی. من به ریاض خدا. برای من رکونا کو. مرا ده خصب خدا نپر تو. چرا که رضابن کفر؟ کفر است. ما که راضی که تو برای من رکوع کنی، ما که راضی تو برای من سجده کنی. من خودم چی شدم؟ تو خود رفتی. خب ما را چه چی کردی؟ ما را که کرد خرق کردی. نا بردم این که کرد. کسی که برماش سر خودا پایین میکنیم میگم نه نه برماش. تظیم دا تازی نکنی. عظمت ذات الله هست. ما خودم بیست چونس استقبال داد بیا لازم میگم. تو برماش چرا میکنی؟ من گفتم تو رجی اجازه میکنیم نه. سجده میکنی اجازت میم نه گفتم اگه شلیک کنی تو سیلیکاش ات کنم. دیگه در زندگی طرف من داور نکوی. برماش شد سجده میکنی. خب گفتم من بسیار خوب قوی ایمان دارم و موحد هستیم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان ابن افان یا علی ابن نبی طالب یا ابو حریره و یا مثلا حسن و یا حسین و یا فاطمه و یا بلال حبشی اونها کسانه بودن که اگر ما تمام عمر نفس خدا بکشیم به خاک پایش نمی رسیم مگه تمام عمر زامت بکشم با گرد خاکی که در جهاد اصحاب بدر در ساده اما خاک گرد که شد وجه اما قطره خاکی که در روی از اینا ریخت اون رو تمام عمر عبادت مرا ای که کفایت میکنه من این قسم میمان قویدارم که تو رو نمیمانه که برای من رکوع و سجده بکنی چه تو یک دوست خدایی که از نکنده در ایمان و در عقیده قوی است و خداوند متعال از اونا راضی شدند و موحید بودند کدام موحید اجازه میده که یک نفر بخیزه برای اون رکوع بکنه سجده بکنه گفتم نشه نشه که در روز قیامت برای هر کدام انسانی که تو سجده کردی در روز قیامت یک اکسیلی هر کدامش کشید کنه برو گمشون تمارا کلام بی دین فکر کرده بودی؟ من مردم دعوت میکنم بیا مر عبادت بکو گفتم در روز قیامت خدای عزوجل خودش گفته این مسیحیایی که حضرت عیسی علی سلاما جور کردن کالاشون درستن برش نپوشوندن این رسایبوجا دیوال در دیوال کلیسا و رویزان کردن خداوند متعال صداش میکنه که یا عیسی در مقابل کل مخلوقات در مقابل کل مخلوقات یا عیسی برش میگن ای بتو ای عیسی ابن مریم آ انت قلت و تتخذوني وامي الهين من دون الله الله از حضرت عیسی سوال میکنه عیسی تو که پیغمبر بودی این میلیون های انسان هایی که خود جرجو شو تو نیبلر و فلان و فلان که میگن که ما پیروای تو هستیم یک از زنایی که در افغانستان می بنامه مشینرز دی are working in افغانستان we are مشینرز for Jesus Christ یک کسایی که میگه ما دوتگارای Jesus Christی سای مسیح هستیم کل از یار اصاد میکنم اگه خود تو سای دخترک که راهبه و تو راهب راهبه و فلانی و پاب جان پال و پاب بندکیت و فلانی تو بیاین کلتان اجه استاد کلشان استاده هستند الله جل جلاله در قرآن از میشان میگه که عیسی علیه سلام خودش استاد میکنه اعنت قلت للناس اتخذوني و الهه اين من دون الله عيسى تو گفتی برای مردم که مرا و يا مادر من را خدا بگیریدين و غیر از الله جل جلاله یافتی استاد تو اما شریف افتکش پیدا کن آخره؟ آخری سوره مایده آخری سوره مایده خب گوش بگید عقیده قرآن عقیده قرآن است تو که دست نخورده قرآن عظیم شان است ما مکلفیت داریم به قران ما مکلفیت ندارم که پدرم چی میگه مادرم چی میگه پدر کلانم چی میگه مادر کلانم چی میگه او خو مشروکین میگفت تر ما دین را خودو ترک میکنیم نه مسلمان میگه پشت نام پدر چی میگردی پدر خشو اگر مردی پشت نام از اون نگرد خودت عقیدت قوی و درست بساز و خودت او استفاده بکن اینه آیت یکصد و شانزه هفتم سوره مایده خوب گوش بگیدیم اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و قال الله يا عیسى ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی من دون الله میگه در روز قیامت خدای عز وجل جل عليه علیه سلام پرسان میکنه و اذ قال الله و یاد کن الله جل جلوه یا عیسى ابن مریم ای حضرت ایسا بچی مریم خوب نام و نام مادرش اردوشه میگیره عیسی ابن مریم اعنت قلت للناس تتخذوني و امي الهين من دون الله تو گفتی که مرا و مادر مرا دو خدای بگیرین به غیر از الله جل جلاله تو گفتی عیسی <تصفح> علی سلام چی جواب میده قال سبحانك عیسی علی سلام با بسیار تواضع میگه خدایا پاکی راست ذات مقدس و پاک تو هستی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق بر من مناسب نیست که من چیز رو بگم که من حق از او رو ندارم من پیغمبر هستم لکن ای حق من نداشتم که ما کس رو بگم که بیا بر من عبادت بکنیم، بیاین بر ما سجده بکنیم. امروز کسایی که ای حق بر خود خدمت و هم عردم هم میگه بیا برای مر رو کو کو بیا برای مستجده کو این حق برخود میده خدا در روز قیامت زلیل میشه و او کسایی که پیش ازی این مردم هم میرن خودم میپرتنست و جمعی کنن بازی دیگه چی میگن یا لیتنی لمتخیب فلانن خلیلا بازی میگه کسایی که رفیقا و دوستای ظالم و جاهل و بیدین داره که گمراه کردن بازی میگه یا لیتنی ای کاشی قاری و مرافیق خود نمیگرفتم یا لیتنی بازی لیتن این دیگه علام ها میگن چی هست؟ یک آرزوییست که نارشد است یا لیتنی لما تخیص فلان خلیله ای کاش ما فلانی فلانی سایبه که مره گو بیا برای مسجده که و بیا برای رکوک و بیا برای تعظیم بکن یا لیتنی لما تخیص فلان خلیله لقد اوال آن ذکر ای از از دین گمراه کرد دا احت دیگه میگن بگه خدای ایر دو دوزخ بر تو پیرواتی میگن رحبر خدا میگم خدای خوب دمی خوب با مطمئن خرقش کی که این من هم ایک که من خوب به نفهم من خوب صاحب نفهم میدم این ظالم خان خرام صاحب آمد پیش من کتر ریش و صفیه خود چرخ میزنه بنامه دین بنامه دین تو مینا چی بنامه دین بنامه عقیده بنامه اسلام خوب ما زری علیه سلام. و افقارالله یا عیسی ابن مريم ما آنت قلت ل الناس التخزوني و امي إلى حين من الله. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. گفت خدایا پاکی مرتاز بر ما مناسب نبود که ما چیزی بر مردم بگیم ما حق نداشتم یعنی بر از نامه فامانه که ما پیغمبر هستم ای امت محمد صل الله عليه وسلم پیغمبر حق نداره که کسر بوي بر مساجه کو. پیغمبر حق نداره کس رو که برای ما و پیغمبر ایک کار رو نمی کنه. پیغمبر موحید است نمی کنه ایک چرا سر پیغمبرهای خدا تومت میکنیم سر یک انسان معصوم باکه که خداوند اونا و الله یعصیم و کمین ناس خداوند اونا معصوم قرار داده از مردمان پیغمبر دیگه فنه نمیزنن میگم ای خدایا ولی خداوند چرا این سوال میکنه بعضی میگه خب حضرت عیسی علیه السلام معصوم پیغمبر خدا و خدای عزوجل هم میفهمه میگه میکن به خاطر ازی که امروز اینمی کسانی که عیسی علیه السلام را سجده میکنن اینمی کسانی که پیغمبرارا سجده میکنن اینمی کسانی که پیش جنس سجده میکنه اینمی کسی که پیش رهبر خود پیش پیر خود پیش شیخ خود پیش مولوی خود پیش فلانی خود سجده میکنه یا در روز قیامت پیش از که داوا کنه اینجا اول از کی پرسان میشه از اونم شخص اول پرسان میشه که آیا تو این گف میخواستی اگر من می... عیسی علیه السلام بشم که ان كنت قلته فقد علمت خدایا اگر من اینو خرم میگفتم تو خود میگفتي اگر ما کسره گفته باشون بیا بر من سجکو اگه ما کسره گفته باشون بیا بر من رکوع کو اگه ما کسره که بیا, اگر ما کس بیا پیش قبر من برام دعا بر من بچر اگه ما گفته باشون خدا لا تو خمیفه. فا اعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. خدایا چیزی که در قلب من هست در داخل من هست خدای کلشو تو میفهمی. ولا اعلم ما في نفسك و خدای اینکه تو علمت چه قدره و چیزی من نمیفهمم. چیزی که تو میفهمی من نمیفهم، اقرار میکنه. بسی که مگه نه فلانی بغیبه میفهم فلانی بغیبه میفهم اینجا خود پیغمان اقرار مگنه خدای چیزا که تو داری تو میفهم من نمیفهم از مرا تو میفهمی تو خدا هستی اما من نمیفهمم خواه اینکه انت انت علام الغیب خدای تو هستی علام الغیب یعنی بسیار عالم هستی به امور غیبی ایگه پایره که اینا میزنن چیزای که در دلشان میگن کارایی که اینا خدا خدای براعت خود از کل کارشان که نی پاب جان نی جان پال جان نی بندکی جان نی فلانی جان ایگه پا من نگفتیم شما تومد کردین سر ما خدا تو عالم غیب استی تو بسیار غیب میفهمی تو خواهد دل ما با قبر استی ما قردو لهم الا ما امرتنی بهی انعبود الله ربی و ربکم میگه <تصفيق> من نگفتم مگم چیزی که خدای تو بالای من کرده بوده که عبادت بکنین ربی پروردگارم مره و رب و پروردگار تان را یعنی خدای من هم الله هست خدای شما هم الله هست خدای تمام پیغمبر الله هست پس بین که فقط ذات الله را عبادت کنیم من همی گفت بگفتم و کنتو علیه هم شهیدم ما دمتو فیهم خدای تا وقتی که من دمه نشان بدم همی گفت توحید میگفتم طبیعیه سجده به الله بکنین رکوع به الله بکنین دست دعا رو با برگاه الله بکنین با کسی دیگه دست دعا بالا نکو اینو میگم پا را می تا وقتی که من زنده بودم و در بینشان بودم فلان متوفیتی وقتی که تو مرا از بین از اینا برداشتی دیگه من در بین این ها نبودم كنت انت رقیب علیهم خدای تو مراقبشان بودی حالتشان تو خوب در میفهمی تو میفهمی که چی دسایز چی جنایت‌هایی کردند انت على كل شهید شه شه خدای تو بر همه چیز آگاه هستی و شاهد هستی و باخبر هستی و می‌بینی اینه نمی‌خستم که حضرت عیسی علیه السلام سوال میشه اینه نمی‌خستم اگر یک کس بخیزه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم سجده کنه هم به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رکوع کنه هم بره پیش پیغمبر پیغمبر خدا بگه پیغمبر خدا بر من بچه بده بچه بده دختر بده دخت فلانی بده حضرت محمد سلام در مقابله umat حساب میشه عین کفزاتی صلی الله علیه و سلام تکرار میکنه که خدایا من ذات موحد بودم این قرآن کلام تو. شهادت میده و قران بر ما که بگوین که عبد الله و رسول پیغمبر صلی الله علیه و بر امت خود گفت که ای مسلمان ها لا که ما اطرت النصر عیسی ابن مریم شما زیاد مرا توصیف نکنید مثل اینکه نصرانی ها حضرت به سر مریم زیاد توصیف کردند زیاد خیزک نزنید این موی دراز دراز که صاحب میمن الدوله پیشونا هست صاحب امّا سبز بزرگ و سبز بزرگ کلش مردمای و, و, سببراه، و, سببراه، و, مردم و هستن که از قرآن بخواهند. من از جد توصیف می‌کنم ولی که دو کلیمه بر فقط بگن. ای امت من، دوباره که عبدالله و رسولو دلخواه قهرمانی بسیار بزرگ است. از عبدالله و رسولو کردن هیچ جدبا بلندتر نیست، نمروشالی بلانتار است، ناریوزت جمهوری بلندتر است، نکودن مقام دیگه بلندتر است.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 نیست هیچ دوست خدا، نیست هیچ دشمن خدا، نیست هیچ حیوان، نیست هیچ سنگ، نیست هیچ درخت. در مجموع بلاخره نیست هیچ مخلوق. این مخلوق حجرالاسود هم شامل است. این مخلوق کعبه هم شامل است. ما کعبه را سجده نمیکنیم. کسی که برای خود کعبه و ذات کعبه سجده میکنه او مشرک میشه. فقط از روی اون طرف داوتمیت. حجرالاسود کسی عبادت نمیکنه. یک سنگهس از تو مرد دولت اون هوا آمد در قبی داشت باز گفت که ای سنگ سیاه تو یک تو تا سنگ سیاه هستی والا ما به خاطر ازی که پیغمبر خداترم ماش گله یا روتی یک ماش میکنه مثل کادم مثلا سر اولاد خدا ماش میکنه تو نما من نفرساندم رسوند نمیتونی نظر رسوند میده مسلمانا می اجرا صدا کس به خاطر ازی که روی وحدت بکنه کسی نمی کنه این الکل ازی رو نافی میکنه یا کدام جن باشه چیزی که حساب بر جن بشه راه مت جن دلشونه برده گرفتار گرفتار عاشق جن است جن ولاشتار جن جن چیست یک روز مک جن رو دیدم در یک جای کت یک جن بود من گفتم که تو مسلمان است گفتم اله بودی بیشاره بودم به خدا در روز کرامت مک هسته تستاعت مشم بازه پیش خداوند تستاعت میکنم گفتم بسیار کلامکاری میکنم ما ولقد کرم نابنی آدم گفتم منی جن خدا گفتم ما کرامت داریم یا تو داری خدا گفت که ولقد کرم نا کی پنی الو کسی که شادیر پرستش میکنه و میگه که نه خدا کرامت ما را نه دا داده شادیر داده ولی خط کررم نه بنی آدم الله تعالی مگه که ما کرامت دادیم بنی آدم تو رو خداون ذات کریم پیدا کردن با کرامت پیدا کردن این پیشانوی با کرامتت بغیر از ذات الله جل جالوهو به هیچ کس پایین نکن تا کرامت تا حفظ کنی اگر یک نفر میره پیش شادی کلی خدا خم میکنه پس چی میکن خود شادی از خود کنه چی کن؟ مالاتر اگر یک نفر برای گم سجده میکنه گمه از خود کنه اگر برای یک انسان دوگه میکنه ایجا ایجا ایجا ایجا هست سجده چیزی که تخصیص خدای عزیز و جل سجده برای الله هست رکوم الله هست دعا دست دعا برای کنه خدا گفته ادعو نی از برای خدا ادعو دعا کنن نی یا یا متخصصین زبان عربی میگن یا يا، یای متکلم است بر یک نفر یای متکلم بر چند نفر است خداوند گفته ادعونی دعا می‌کنیم به ما دعا بکن یعنی دست دعا بگیم که یا الله بر ما بچه بجه یا الله بر ما اولاد بده یا الله ما مریض هستیم یا الله ما مشکل دارم یا الله اشکاست دیگه دست دعا راه بالا چون قرآن خودش گفته قرآن امر میکنه که او دعونی دعا فقط به ما بکنید دعا عبادت است اینالت لا اله الا الله اول بخشی چی میگیم لا اله کلش چی کردیم نفیه کردیم تمام مخلوقاته هیچ مخلوق شایسته عبادت نیست چیزی که نامش عبادت است پرسان که از علما بگو اینی کار عبادت است بله ای رو بکی بکنه به الله سجد عبادت است بله بکی میشه رکبه و چیست؟ عبادت بکی میشه دعا عبادت هست بکی میشه نظر عبادت هست بکی میشه قربانی عبادت هست بکی میشه کنش به الله میشه اگر تو کلمه لا اله معنا الا اله الاه باز الله مخصوص الله جل خب من ميخايم خداوند عبادت کنم ميخايم چه بخیزم خيزم قسارتش تو بخي يگ زنه قسگك برم باز من خدا رو عبادت کنم. یکی دیگه ديگه ميخيسه تا تو بسوب لنگ خدا در صاحب در چط دست از چت دوستبار انداخته خدا كست خدا خدا کرده یکی لنگه خدا كشافت چي ما هر خواستم که عبادت كه وقت مقيق عبادت نيست چطور محمد رسول الله از کدام استغفر محمدو در کتاب کدام حدیث صحیح از پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که اینی عبادت پیغمبر کرده خوب عبادت است نکرده بود عبادت نیست h تو او من دکتر سبب کتمان شش بود سر این موضوع بحث داشتیم گفت فلان نگان کلمات زیاد میکنه مثلا ما گفتم مامیم که الله منت سلام و سلام تبارکت یا ذل جلال و اکرام چرا گفت دیگه جملات نمیگی وقتی بخاطر پیغمبری نه گفته دیگه پیغمبر اینه گفته فرمول داده پیغمبر ما اینه فرمول دین مثل فرمول کیمیا وارست H2O H یک هیدروژن و 2O دو دو اکسیژن دو هایدروژن یک اکسیژن بباشه خب اینال وقتی که اگر یک نفر اینمی H2O را H3O o آب میته؟ میته؟ نمیته. اگر ایواز H2O، H1O بگیر، آب میته؟ اسلام و من مطراست. اسلام قرآن و سنت است. از این نمی‌که یک حرف زیاد کردی یا یک حرف کم کردی اسلام مکمل لشش. آب هم قران خداوند متعال نازل کرده بود این استوره پسان مردم یافتن یولمای که آمدن این رو جور کردن اولین از زمان آدم علیه السلام بود این فرمول پسان آمدن مردم ایره جور کرده انال دین هم از زمان آدم علیه السلام بود تا زمان محمد صلی الله علیه و سلم و تا امروز پس ما اگر می خواهیم که دین محمدی را داشته باشیم اونمو فرمولی که پیغمبر بر ما داده چون خود خداوند مطالب بر ما گفته که بگوین که لا اله الا الله و از کدام طریق بگوین محمد رسول یک کسی میگه من الله را دوست دارم درست از که الله را دوست داری و میگه میخوایم که الله ما را دوست داشته باشه. ولی من الله را دوست دارم ثابت کو. و میگن که الله ما را دوست داشته باشه از کجا بفهمم؟ میگن قل این کنتم تحبون الله فرمول قرآنی است. اگر تو الله دوست داری به خداوند متعال و حضرت محمد صلی الله علیه و میگه ای محمد بگو برای این مسلمان‌ها این کنتم تحبون الله اگر حقیقتا راستی دروغ نگین شما الله ها دوست دارین فطبین پس این متابعت ما را بکنین. چه خصم متابعت بکنیم؟ دیگه مسلمان دیگه راهبر ضرورت ندارن. چونکه این رهبرایی که ای رهبرای دیگه را که رفتی گیریتی این رهبرانکات دیگه رو اس که برای شاگرد اگه پیسہ دادی 100 دلار دادی که کمکه‌ای داد بود بازو تام خراب میکنن اگر رهبرت احمد و محمود و کلبی و مقصودا جور کردی یا باز خراب میشن باز کسازی توام خراب میشه میگن رهبرم خراب شده که ما هم خراب شد اما اگر تو مطابق قرآن رهبرت کی رو ره بگیری فی رسول الله اسوه او سو مسلمان دیگه او نداره رهبر نداره رهبرش محمد صلی الله علیه و سلم ایناله خداوند میگه که برشان بوک ان کنتم تحبون الله اگر شما الله رو دوست دارین فتبعون پس مطابعت کیر بکنید مطابعت مرا بکنید مطابقتی مطابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کو گفت یک خط دعا دارید، یک خط دعا کو دو خط دادت دو خط دعا دو دو دو کو گفت نماز فرض صبح دو رکعت است دو رکعت قبول کو گفت نماز فرض پیشین چهار رکعت است چهار رکعت قبول از این زیاد کو نکم کو خب اینو که فهمیدیم که اگر ما خدا رو دوست داشته باشیم باید چی کنیم؟ از پیغمبر صلی و آله از طریق پیغمبر استفاده کنیم. این عالمه که خای میخوام که خدا ما رو دوست داشته باشه. میخوام که ما رو دوست داشته باشه. چه خصم بفهمیم که خدا ما رو دوست داره؟ عینه وایت شریف است میگه قل ان کنتم حبون الله فاتبعونی. بگو برشان که اگر شما الله رو دوست دارین، مرا بکونین. چی میگه؟ یو حببکم الله. باز الله شما رو دوست می داشت. یعنی اگر خدا را دوست هم داری پیروی است کی بگو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اگر میخوای که الله ترا دوست هم داشته باشه پیروی است کی بگو از پر مخروس و از این خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام راهبر و معلمی بود که از خلافت شروع تا طهارت بیچاره شما مبلوی صاحب که درس بخاری شریف هم می میدن دمی می حلق بخاری شریف ما شما دیدم که حتی در دین اسلام چیزهای بسیار عادی که در نظر ما موضوع است را هم بر ما درس دادند شاب چه خسم برن به شاب چه خسم باید بگیرن بهول با خوددا چه قمواافظه بکنن کل لکه پای خود ریزه میدن میده میده میده تاون پرزگ های خود خود معتر <تصفيق> هم بر از متر دینه همون پرزگ های خود خوش را پیقز گفته که اگرنی پرزگ رو مرات نکن یک پنچر میشی.بی سری وقت یک نفر خوب تیل کته داره لاکن داش کسنج خک رف تا پنجره کتا موتش نمیره میگه کل موت چی پنجچ ک یا سنج خک در دی سنج ها خه داخل نکن در دینه اگه سنجاق خدا کل کرد پنج چار میشی. بیشتری کساست که پف شدن، پف شدن، پندید, پندید، پندید، پندید. یک سنجاق کرد از از آسمان عفتم خراب، افتاد داد زمین. ما داریم در دا فرانسه سکوت کرد، سکوت کرد. این ها چیست؟ این کنتو بتو الله فتبیعونی یو حبب کم الله بناه کلمه لا اله الا الله چیست محمد و رسول الله کل درس ما سرچی میچرخید سلاله اله الله الله و محمد رسول الله که انسان که لا اله الا الله و محمد رسول الله رو بشکل درست میخونه اول کار را میکنه که پیغمبر برش گفتن و او عظمت خدای عزمجال رو در قلب خود جای میده بغیر از عظمت خداوند هیچ کس عظمت نداره دیگه کلی که مخلوق است کلی که عاجز است کلی ناتوان است کلی بر رحمت خدای عزوجل محتاج است اگر ملائکه هم از بر رحمت خدای عزوجل محتاج است اگر پیغمبر است هم به او محتاج است اگر ولی خدا هست هم به او محتاج است اگر هر قوی و هر کسی که باشه بر رحمت خدای عزوجل محتاج است بنا اول باید انسان عظمت خدای عزوجل در قلب خود جای بده و با غیر از عظمت خداوند عظمت بزرگی کس در قلب خود جای ندا. دیگه کلیجی مخلوق است، دوز داری مخلوقات، ترام دوز دارم، مورام دوز دارم، پایگان بالارم دوز دارم، عولیا ولارم دوز دارم، رود هاشون بلند است. سهیش سالو برده، اول تو رود بید بسیار بلند است، خیم از خونه میکشی. اول تو رود بید بلند است، تو چند راه باش پاش؟ نه پیاده؟ خدان دیدم تو دیز سر بیشی میاد پایین، آرمان خونه اما تو نگو که برندست. اما تو اگر جان پیش کبامشی پیش خروجی استی پیاداستی. کلمه. چخ خداوند مطال جل جلاله بیچاره هستیم از این خاطر ای اصل لا اله الا الله و محمد رسول که ما تمام زندگی خدا به طریقی پیغمبر صلی الله علیه و, علی و سلام اگر ما زندگی خدا مطابق طریقی پیغمبر صم ایار بکنیم ما مسلمان هستیم که کلمه را حقش ادا کردیم چه قسم حقش ادا کردیم که شیرینی خوری شیرینی خدا اسلام نیست عروسی نکاح اختیار همسرت، مرگ زندگی پوسان کردن مرضی کلش باید مطابق طریق پیغمبر صم برسان بکنیم که در این قسمت پیغمبر صلی چی میگفت چون ما شما احادیث خوانیم که پیغمبر صصلاً از خلافت از مسائل سیاسی بسیار بزرگ گرفته تا بسیار مسائل کوچک خردی که حتی ادا تشناب رفتند تا تشناب داخل شدند در دا تشنابات کلش پیغمبر ص برای ما دین مکمل و دینی که خداوند گفت اليوم اكملت لكم دينكم الى بر ما ده سبحان ربيك ربي الا ذات يا مؤسفون و سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين و راقبه المتطين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين با هم در مرتبه دیگه بر خود دوا میکنیم خدای ما را ببخشی خدای ما و انده های گناهگار و عجز و بیچاری تستیم اله توبه کردیم اله نمی فهمیدیم خدای تو بر ما اول عقیده توحید صحیح بر ما خدای یاد بتی الهی بر علمای ما توفیق بتی توفیق نصیب کنی که اینا عقید عقیده قرآنی را بر مردم یاد بتن چرا که دنیا رو که خراب میکنه ما علما خراب میکنیم موت عالم موت العالم ما نیستم که عالم هستن اگر حقیقت را نگوییم ماسک کتابای خدای پاک اول بر علما ما توفیق نصیب کنی که عقیده قرآنی رو بر ما یاد بده که رسول الله صلی الله علیه و آورده اون رو بر ما یاد بده خداوند ما هم بیچاره و مسکین هستیم خدا پروردگار را تو پروردگار ما سیما را به گناه های ما نگیر اگر کدام گناهی هم به خاطر مسکین و بیچاره فلسطین خدای تو به شهادتشان را بر به برگاه قبول بکنی خدای مسلمان ها توفیق جهاد توفیق مقاومت توفیق گفتن حق توفیق استاد شدن در مقابل باطل نصیب بکنی خدای کسایی که ظالم هستن متجاوز هستن قتل می کنن خدای اینا خود تجاوز بسیار زیاد شدن پروردگار ها